نوما احمدیان سلام با اینکه مدت زمان خیلی کمی در نوبین الماس کار میکنید اما شخصیت خودتون به ای بوده که جای خودتون رو در نوبین الماس و در کاری که دارین انجام میدین باز کردین نمیدونم نحوه ورود به آشنایدون چجوری بوده اما به شدت اگر به عنوان یک غریبه هم تشریف میآوردین مصاحبه میکردین مطمئن باشین که تو مصاحبه اولیه قبول میشدین کاکادم با شما و دقت شما بسیار لذت بخش برای شخص بنده امیدوارم که در نوبین الماس بمانید و ما هم از کناری شما بودن، کیف کنیم و لذت بذاریم.